خب امیدوارم که تا به اینجای کلاس دایمی هیپنوتیزم کاملا دقیق و عمیق و حتی اگه لازمه چند و چند بار دروس رو مطالعه کردید و خصوصا درس قبلی در مدل هیپناتیک لوپ رو امیدوارم که حتما با دقت تمام گوش کرده باشید الان زمان این هست که در واقع مدل هیپناتیک لوپ رو یه ذره تعمیم بدم و در واقع عمقش رو به شما نشون بدم تا اینکه متوجه شید چرا قوانین مختلف به نظر میاد که توی این هستی و توی این آفرینش برای افراد مختلف جواب میده یا اینکه یه قانون واحد برای چند نفر جواب میده و برای سری جواب نمیده خب این چیزی هست که توی این درس دماره صحبت خواهد شد ببینید بر اساس مدل هیبنانتیکلوب تا الان باید متوجه شده باشید که به عبارتی میشه با یه نگاه همیخترین رو گفت که هر انسانی تو هر لحظه زندگیش داره توی یک تونل واقعیت زندگی میکنه که صحبت کردیم درباره اینکه این که این تونل واقعیت از چه اجزایی تشکیل شده و چه چیزی این رو میسازه و اصلا چطور شدت پیدا میکنه یا اینکه چطور میشه از این بیرون اومد و تونل واقعیت رو عوض کرد و در واقع الان رو این تحکید دارم که شما آگاشید شاید این رو شنیدید که یه نفری مثلا میاد میگه که رنگ زرد برای من خوششانسی میاره و یه نفر دیگه ای هست که میگه زرد برای من بدشانسی میاره یه نفری ممکنه بگه عدد 13 برای من خوششانسی میاره و یه جماعت و حتی یک فرهنگ دیگری ممکنه بگه که نه این عدد بر من نتیجه محکوسی داره نتیجه خوب یا بدی داره حالا به اون فرهنگ و درور خیلی چیزهایه دیگه میشه این حرفو زد حتی شما قانونی مثل قانون جذب و این به هر چیزی فکر کنی بهش میرسی و چیزهای مختلف در واقع زمانی برای شما جواب میدن که اول از همه اون قوانین جز تونل واقعیت شما شده باشن یعنی توی باورهای ذهنیتون این باشه که این قانون مثلا وجود داره یا وجود نداره و به همین علتی که ممکنه فرد کاملا دانشمند و منطقی و آزمایشگاهی و اینها که به فرض به قانوجه از باوری نداره هزار بار هم که ازش استفاده کنه چه بسا هیپناتیک لپی براش وجود داشته باشه که اصلا در واقع این قوانین براش اصلا صدق نکنه هر چقدر تلاش میکنه میبینه که این قانون که جواب نداد و بعد میره با بقیه بحث میکنه میگه دیدید گفتم که این قانون واقعی نیست یا واقعی هست بر اون تونل واقعیتش و شما به عنوان یه فردی که توی کلاس ایبنوتیزم شرکت دارید الان احتمالاً متوجه شدید که موضوع اصلا عمیق‌تر از این حرف است قبل از اینکه ما بگیم چه قانونی در هستی وجود داره و چه قانونی وجود نداره باید بیداگاشیم که محدود کننده خود ماییم این ماییم که با رد کردن مکرر یک قانون تونل واقعیتی رو بر خودمون ایجاد میکنیم که واقعاً دیگه اون قانون بر ما جواب نمیده ممکنه برای همسایه بغلی جواب بده که تونل واقعیت مختلفی داره متفاوتی داره اما برای شما رخ نخواهد داد و بنابراین الان شما دارید چیزهای صحیح همیختری متوجه میشید و اون اینه که اگر میخواید یک قانون خاص برای شما جواب بده به فرض و تو زندگی شما کار کنه باید اول از همه تونل واقعیت واقعیت اون رو بسازید خیلی‌ها سعی میکنه از قدرت آنتود مثلا مسئله مرتبط با قانون جذب و این‌ها رو یاد بگیرن و بعد بار اول میگن که خب من الان بار اول تست کردم نشد جواب نداد خب نکته همینه شما باید عوض کنید تونل واقعیتتون رو باورهاتون رو نوع نگرش هاتون رو و تجربه کنید کم کم تجربیت متافیزیکی رو و زمانی که کامل وارد یک تونل واقعیت دیگه شدید اون موقع است که میتونید از قوانین اون هم بهره ببرید و استفاده کنید و بنابراین هر فهمیقی که اینجوری یاد گرفتید اینه که به جای اینکه نگران قانون ها باشید یعنی بگردید دنبال یه سری قانونای خاص آگاه باشید که این شما هستید که به صورت خیلی ناحشیارانهی در واقع دارید مینویسید نویسید که چه قانونی دوست دارید تو زندگیتون عمل بکنه و چه قانونی قرار نیست توی زندگیتون عمل کنه.